اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. به الناس نام خداوند بخشنده بخشایشگر بگو پناه میبرم به پروردگار مردم ملک الناس به مالک و حاکم مردم اله به معبود مردم من شر الوسواس الخناس از شر وسوسگر پنهانکار الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس که در درون سینه انسانها وسوسه می کند من الجنة والناس خواه از جن باشد یا از انسان